این داستان بند انگشتی روزی روزگاری زیر آسمون آبی روستایی فقیری بود که یک شب کنار اجاق کلبه فقیرانش نشسته بود و از سر بیکاری آتیش اون رو به هم میزد همسرش هم مشغول نخریسی بود. کمی که گذشت روستایی به همسرش گفت چقدر قمنگیز است که ما بچه نداریم خانه ما سوت و کور و زده است ولی از خانه همسایه همیشه صدای شادی کودکان به گوش بیرسد. زن گفت راست گفتی اگه من یه بچه حتی به کوچیکی انگشت شستم داشتم چقدر احساس خوشبختی میکردم اون وقت ما هم کسی داشتیم که دوستش داشته باشیم. دست بر برغذا چند ماهی طول نکشید که آرزوی زن برآورده شد. و بچه ای به دنیا آورد که چهار ستون بدنش سالم بود ولی قدش به اندازه انگشت دست بود. زن با خود گفت چقدر خوب که آرزون برآورده شد. این بچه خیلی کوچیکه ولی باز هم خدا رو شکر میکنم و بهش عشق میورزم. بچه خیلی کوچیک بود. برای همه نامش رو بند انگشتی گذاشتن. پدر مادر بیشتر وقتشون رو به پرورش بندانگشتی میگذونند. غذاهای مقوی براش تهیه میکردن و از هیچ کوششی دریغ نداشتند. با این همه بچه رشد نمیکرد و بزرگ نمیشد و همون اندازه بند انگشت باقی مونده بود. ولی برق چشمای بندانگشتی از هوش زیادش حکایت می‌کرد. طولی نکشید که اون نشان داد با وجود جسه بسیار کوچیکش خیلی باهوشه و از عهده هر کاری برمیاد. یکی از روزها که پدر بندنگوشتی میخواست به جنگل بره و شاخه درخت رو ببره با صدای بلند با خودش میگفت ای کاش کسی رو داشتم که گاری رو به جنگل ببره در اون صورت زودتر از همه به جنگل میرسیدم. بندنگوشتی این حرف رو شنید و گفت پدر جان من میتونم این کار رو بکنم گاری رو پیش من بذار من به موقع اونو به جنگل میرسونم پدر که خندش گرفته بود گفت چقدر هم که این کار شدنیه گاری رو دست تو بسپرم به تو چطور اعتماد کنم تو اونقدر کوچیکی که نمیتونی حتی افزار اسب رو به دست بگیری پسرک در جواب گفت به کوچیکی من نگاه نکنین اگه مادر یراق اسب رو ببنده من روی گوش اسب میشینم و بهش دستور میدم به کدوم طرف بره پدر گفت باشه حالا که اصرار داری یک بار امتحان میکنم پدر راه جنگل رو در پیش گرفت و رفت بعد مادر اسب رو زین و یراق کرد و بند رو روی گوش حیوان گذاشت پسرک زیر گوش اسب فریاد زد هی برو هیوون و اسب راه افتاد به همین ترتیب هر جا که لازم بود اسب به طرف راست یا چپ بره پسرک کلماتی مناسب زیر گوشش میگفت و گاری در مسیر درست جلو میرفت بالاخره بدون اینکه اتفاقی بیفته گاری به موقع به مقصد رسید درست موقعی که گاری پیچید تا وارد جنگل بشه دو مرد غریبه سر رسیدند. اون دوتا صدای گاریچی رو میشنیدن و میدیدن که گاری داره مسیر درستی رو میره و به جلو حرکت میکنه ولی از گاریچی خبری نبود. از تعجب خشکشون زده بود. یکی از اونا به دیگری گفت به حق چیزای ندیده بیا دنبالش بریم و ببینیم کجا توقف میکنه. اون دوتا در پی گاری راه افتادن و دیدن در کنار شاخه های درخت توقف کرد. همین که چشم بندانگشتی به پدرش افتاد فریاد زد پدر دیدی تونسم به تنهایی گاری و اسب و بیارم حالا من از پشت گوش اسب پایین بیار پدر با یک دست افسار اسب رو نگه داشت و با دست دیگه پسر کوچکش رو از روی گوش اون بلند کرد و زمین گذاشت وقتی چشم غریبه ها به بندانگشتی افتاد بیشتر تعجب کردند اونا از آنچه که میدیدند سر در نمی آوردن. همون موقع یکی از مردا به اون یکی گفت: میتونیم با نمایش این آدم کوچولو در شهر پول زیادی به دست بیاریم شاید بتونیم اونو بخریم. با این فکر هر دو نزد پدرش رفتن و گفتن آیا حاضر این آدم کوچولو رو به ما بفروشی؟ ما خیلی خوب ازش نگهداری داریم میکنیم. پدر جواب داد، نه اون فرزند دلبند منه در ازای همه تلاهای دنیا هم حاضر نیستم یه تار موش رو بفروش اما بند انگشتی که لابلای چینای کت پدرش خزیده بود گفتگوی اون دوتا رو با پدرش شنید به طرف شناهای پدرش رفت و در گوش پدرش گفت پدر اجازه بده من همراه اونا برم اول میدم که دوباره نزد شما برگردم پدر هم تلاهای زیاد اونا رو گرفت و پسرش رو در اختیار مردا گذاشت. اونا پرسیدن پرسدن حالا تو رو کجا ببریم؟ بند انگوشتی جواب داد روی لبه کلاهتون در اونجا من میتونم راه برم و دوروورم رو نگاه کنم. موازه به خودم هم هستم که سقوط نکنم. اونا همون کاری رو کردن که از اون خواسته شده بود. به این ترتیب، بند انگشتی از پدرش جدا شده و با اونها به راه افتاد. اونا تمام روز در راه بودن. وقتی شب شد، بند انگشتی که از اون همه وقت اون بالا سرنشستن خسته شده بود فریاد زد. فایسین دیگه، لطفا منو روی زمین بذارین. مرد گفت، نه آدم کوچولو جاد خوبه، همونجا که هستی باش، مزاحمم که نیستی. اغلب پرنده ها هم بدون اینکه ناراحتم کنن روی کلاه میشینن. حالا تو هم همونجا باش دیگه. بند اعتراض کرد و گفت: "نه، من میدونم چیکار باید بکنم. از شما میخوام منو پایین بیارین." بالاخره مرد کلاهش رو برداشت و کنار جاده گذاشت. در یک لحظه بند از روی لبه کلاه پرید و دوان دوان از پرچین گذشت و وارد مزرعه مجاور شد. میان کلوخای مزرعه ناگهان سر خورد و داخل لونه یک موش صحرایی که از روی لبه کلاه اون مرد دیده بود افتاد. بعد با لحن خوشحالی و با صدای بلندی با اونا گفت خدافز آیون. شما باید بدون من به خونتون برگردین. اون دوتا مرد خیلی ناراحت شدن. و سعی کردن با چوب اونا از تو سوراخ موش بیرون بکشن ولی فایده ای نداشت چون بندنگشتی به انتهایی ترین نقطه سوراخ خزیده بود دیگه شب شده بود و اون مردا مجبور شدن خسته و خشمگین با جیبای خالی به خونشون برگردند. وقتی بندنگشتی مطمئن شد که از شر اونا خلاص شده از سوراخ بیرون اومد و به اطراف نگاه کرد و با خودش گفت درست نیست در این تاریکی شب از وسط مزرعه عبور بکنم. احتمالا زمین می‌خورم و دست و پا میشکنه. ناگهان چشم بند به یک پوست مار افتاد. با هیجان داد کشید: چه خوب! امشب و میتونم با خیال راحت توی این پوست مار بخوابم. بعدم به داخل پوست مار خزید و یک کمی که گذشت چشماش سنگین شد و به یک خواب عمیق فرو رفت. همون لحظه بود که یه صدایی به گوشش رسید. بند متوجه شد که اون صدا صدای پای همون دوتا مرده. اونا میخواستن برای دزدی وارد خونه کشیش دهکده بشن. یکی از اون دوتا به دیگری گفت خونه پر از طلا و نقره است ولی چطوری میتونیم این همه طلا و نقره رو پیدا کنیم؟ بند با صدای بلند گفت من راهشو میدونم یکی از مردا با ترس و لرز گفت صدای کی بود مطمئنم یه صدای شنیدم اون دوتا بی حرکت و ساکت گوشاشونو تیز کردند و بندانگشتی دوباره با صدای بلند گفت منو حمله های خودتون ببرین کمکتون میکنم یکی از اونا پرسید اصلا تو کجا هستی بندانگشتی جواب داد روی زمینو بگرد جهت صدا رو دنبال کن منو پیدا میکنی اینو که شنیدن شروع کردم به گشتن تا بالاخره اونو پیدا کردن یکی از دوزده اونو از رو زمین بلند کرد و گفت فسقلی تو چطوری میتونی کمکمون کنی؟ بعد انگشتی فریاد زد من چطوری میتونم کمکتون کنم؟ من میتونم از بین نرده های پنجره وارد اتاق کشیش بشم و هرچی که خواستین وردارم و براتون بیارم دوستا گفتند باشه تو رو با خودمون میبریم ببینیم چیکار میتونی بکنی به علاوه تو انقدر کوچک و ضعیف هستی که اگرم بخوای نمیتونی به ما صدمه ای بزنی. دوستا از یاد برده بودند که بند انگشتی با اینکه کوچک بود ولی صدای بلند و گوشخراشی داشت. اون دوتا مرد بند انگشتی رو برداشتن و با خودشون بردند وارد حیات منزل کشیش که شدن طولی نکشید که بند از بین نرده به اتاق کشیش رفت و با صدای خیلی بلندی فریاد زد همه چیزایی رو که میخواین از سوی اتاق بهتون بدم آهسته اینقدر داد نزن وگر نه حالی خونه رو بیدار میکنی بند انگشتی دوباره با صدای خیلی بلندی گفت اول کدوم رو بردارم همه چیزا رو اتاق میخوان یکی از کلفتا که در اتاق مجاور خوابیده بود از سر و صدای اون بیدار شد و همونطور که در رخت خواب دراز کشیده بود حرفای بندنگشتی رو شنید یکی از دوزا از سر و صدای بندنگشتی وحشت زده شد و فرار کرد اما وقتی دید هنوز همه جا ساکته برگشت و گفت گوش کن. حالا وقتی شوخی کردن و مسخره بازی نیست هرچی که هست و جمع کن و از پنجره به ما بده بعد انگشتی دوباره فریاد زد آهان حالا فهمیدم همه چیزای خونه رو میخوان خوب اونا رو توی دستاتون دستادون خدمتکار که دیگه کاملا بیدار شده بود فهمید اوضاع چه قراره از تختخواب بیرون پرید و خواست به سرعت بیرون بیاد که در تاریکی پاش محکم به درخورد. با شنیدن صدای این زربه دوستا با ترس و وحشت و به سرعت پا به فرار گذاشتن. انگار که سگ باشن و شکارچی اونا رو دنبال کرده باشه. دختر خدمتکار که دنبال چراغ رفته بود برگشت و همه جای اتاق و وارسی کرد. بند انگشتی وقتی دید خدمتکار با چراغ وارد اتاق شد فوری از پنجره بیرون پرید و خودشو در انبار کاه پنهان کرد خدمتکارم اونو ندید بالاخره خدمتکار با چراغ همه گوشه و کنار اتاقو گشت و هیچی ندید و به اتاق خودش برگشت و فکر کرد که از اول خواب دیده بند انگشتی که در انبار روی های خشک جای دنج پیدا کرده بود تصمیم گرفت تا صبح همونجا بخوابه و هوا که روشن شد نزد پدر مادرش برگرده اما نمیدونست که هنوز مشکلات دیگه هم سر راهش هستن سپیده دم روز بعد خدمتکار بلند شد و به طرف انبار رفت تا برای گله الوفه برداره اولین دسته علف رو که از جاشون برداشت بند انگشتی توی اونا خوابیده بود. و انقدر به خواب عمیق فرو رفته بود که متوجه نشد چه اتفاقی داره میفته. وقتی هم که بالاخره بیدار شد دید در دهان یک گاوه و داره همراه اللف ها میشه. بند انگشتی همین که فهمید تو چه موقعیتی قرار داره فریاد کشید. وای خدای من انگار تو ماشین چرخ گوشت افتادم فرصت چندانی نداشت که کاری بکنه فقط تقلا میکرد و این طرف اون طرف میرفت که زیر دندون گاو له نشه بالاخره سر خورد و داخل معده گاو افتاد بند فریاد کشید چه جای تاریکیه هیچ روزنه‌ای برای ورود نور وجود نداره شمم که نمیشه روشن کرد از اون بدتر این که هر لسع علفای تازه ای به اونجا میریختن و دیگه جای برای تکون خوردن باقی نمونده دیگه اونقدر عرصه ارسه بر بند تنگ شده بود که بی اختیار فریاد زد دیگه علف کافیه دختر خدمتکار که سرگرم دوشیدن گاو بود این صدا رو شنید و بلافاصله به یاد آورد که همین صدا رو دیشب شنیده بود دخترک ترسید و سطل شیر از دستش افتاد و در حالی که جیغ میزد نزد اربابش دوید و گفت عرباب عرباب گاف داشت مثل آدم حرف میزد کشیش همینطور که داشت به طرف طویله میرفت تا ببینه چه اتفاقی افتاده به خدمتکار گفت دختر این چه مزخرفاتیه که میگی ولی همین که پاش و داخل طویله گذاشت صدای بندنگشتی رو شنید که فریاد میزد دیگه علف کافیه کشیش وحشت کرد، فکر کرد روح خبیسی در گاو حلول پیدا کرده، برای همین دستور داد گاو رو بکشن. حیوون زبون بستر رو کشتن و تیکه تیکه کردن و شکم بش که بند توش مخفی شده بود روی توده از کود ریختن. بند به سختی تونست راهی برای خروج پیدا کنه. و هنوز کاملا بیرون نیومده بود که بلای تازه نازل شد. گرگ گرسنه از راه رسید و تو یه به هم زدن شیکنبر رو بلعید اید. بند انگشتی ناامید نشد. از اون جای سخت و ناراحت کننده با صدای بلند داد گورگ گرگ دوست داری جایی رو که میشناسم که غذای زیادی داره بهت نشون بدم؟ گرگ پرسید. برای خوردن اون غذاهای چرب و نرم کجا باید برم؟ باید به خونه بری که از اینجا چندان دور نیست. من راهش رو بهت نشون میدم. بعد از یک حفره بزرگ وارد آشپسخونه اون خونه بشی و اونجا یک عالم خوردنی های لذیذ و نوشیدنی های میتونی هر چقدر دلت خواست بخوری؟ بعد هم نشونی خونه پدرش رو به گرگ داد طولی نکشید که گرد خونه رو پیدا کرد از همون حفره وارد خونه شد و از غذاهای زیادی که توی گنج بود سیر و پر خورد بعد از اینکه تمام غذاها رو خورد خواست از همون حفره بیرون بیاد ولی چون زیاد خورده بود در حفره گیر کرد و این درست همون چیزی بود که بندنگشتی میخواست. اون داخل شیکم گرد شروع کرد به جست و خیز کردن و سر و صدا را انداختن جیغ و فریادی به راه انداخته بود که اون سرش ناپیدا گرد گفت چرا آروم نمیگیری الان که همه اهل خونه بیدار بشن بند انگشتی گفت تو حالا تو داشتی از خوردن غذاهای چرب و لذیذ لذت میبردی حالا نوبت منه اون با تمام نیرو سر و صدا میکرد تا اینکه بالاخره پدر و مادرش بیدار شدن اون دوتا وحشت زده به طرف آشپزخونه رفتن از سوراخ کلید که نگاه کردن دیدن گرگی در اونجا گیر کرده شوهر یک تبر برداشت و زن یه داست برداشت وقتی داشتن در رو باز می مرد به همسرش گفت پشت سر من بیا اگر من با ضربه اول اونو نکشتم تو با داست ضربه دوم رو بزن. بند انگشتی با شنیدن صدای پدرش فریاد زد پدر جان من اینجا هستم توی شکم گرگم. پدر با صدای بلند گفت خدایا شکرت فرزندم و دوباره به هم برگردوندی. بعد هم بزنش گفت که لازم نیست از داست استفاده کنه جو ممکنه به پسرشون صدمه بزنه. او با تبرش یک ضربه محکم به سر گرگ زد و اونو از تنش جدا کرد. با کارد و قیچی هم گرگ و شکافت و بندنگشتی رو آزاد کرد. پدر با دیدن بندنگشتی گفت چه ناراحتیایی که ما توی این مدت نکشیدیم. بله پدر، حق با شماست. منم در عوض سرد و گرم دنیا رو چشیدم. اگه بدونین در چه جاهای عجیب و غریبی زندانی شدم؟ حالا خدا را شکش که دوباره دارم تو هوای آزاد نفس میکشم. بعد ادامه داد. پدر عزیزم من در سوراخ موش افتادم. بعد گاوی من و بلعید، اید در ساخرم که تو شیکم گرگ زندانی شدم. اما مهم اینه که حالا سالم و تندرست توی خونمونم. پدر و مادرش اونو غرق بوسه کردن و در آغوششون فشردنش. اونا رو از بندنگشتی رو بهتر از جان خطاب کردن و بهش گفتن ما دیگه حاضر نیستیم در ازای همه سروت دنیا هم تو رو به کسی بفروشیم. بعد هم به او خوردنی و نوشیدنی دادن و لباس تازه پوشوندن چون لباس های قبلیش در طول سفر کهنه و فرسوده شده بود. شاید بعدها ماجراهای دیگری هم درباره باره بند براتون نقل کنیم.